و همه دوستان و میخوام که درباره این هسکر جدیدی که کانون تولید کرده توضیح بدم کانون یه ویدیو 3 دقیقهی منتشر کرده که توی اون یک 120 مگا و با اون ویدیوهایی رو گرفته اون ویدیوها رو منتشر کرده که نشون بده که قدرت این هسکر در چه حد استش البته خب این اولین بار نیستش که ما در این حسگر میشنویم این اسکر دو سال پیش کنون رو معرفیش کردهش و خب اون موقع تو یک نمایشگاه این رو گذاشتش برای اینکه مردم بیان ببینننش اسم این حسگر رو کانن گذاشته بودش 120MXS رزولوشن دقیق این حسگر برابر 13280 پیکسل در 9184 پیکسله که خیلی رزولوشن بالاییه این رزولوشن تقریبا 60 برابر یک حسگر معمولیه یعنی 60 برابر یک هسکری مثل کنان 80D اما نکته مهمی که در این هسکر هستش اینه که اندازه این هسکر APS-H ای ای ای یعنی این اندازه یک کمی بزرگتر از اندازه هسکری APS-C مثل هسکر همون کنان 80D و یک کم کچیکتر از هسکره فول فریمه مثلا مثل هسکر کنان 5D مارک فور اما خب چه چجوری تونسته این تعداد پیکسل رو توی یک هسکری به این اندازه جا بده خوب طبیعتا با ریستر کردن اندازه فوتودیودا یعنی همون سلولایی که روی هسکر هستش انقدر اونها رو کوچیک کرده به اندازه تقریبا اندازه هر یک زل یکی از این سلولها دو دو دهم نانومتره که خب اندازه خیلی خیلی کوچیکیه خود کنون درباره برین حسکر اینطوری میگه میگه که رزولوشن فوقالعاده این حسکر از پردازش موازی سیگنالهای دریافت شده روی سلول ها با سرعت فوق سری یا های بدست به دست میاد خانش اطلاعات از روی این سلول ها توسط 28 کانال خروجی اطلاعات دیجیتالی امکان پذیر شده اما از این توضیحات فنیش فن که بگذاریم توی کانال هم گذاشتم که یک مقایسه ای کرده ارده توی این ویدیو دو تا ساعت رو گذاشته کنار هم، یعنی در واقع دو تا ویدیو از یک ساعت موچی، از موتور یک ساعت موچی و میخواد نشون بده که کیفیت این چقدره. میخواد در واقع مقایسه بکنه که اگر یک ویدیویی با این حسگر گرفته بشه چقدر میتونه تفاوت داشته باشه. اگر شما این تصاویر رو ببینین متوجه میشین که تقریباً به نظر میادش که یکی از اونها با یک دوربین موبایل گرفته شده. و یکی از اون هم مثلا با یک دوربین DSLR البته من دارم در مورد یک فریم از اون در واقع ویدیو دارم صحبت میکنم نکته جالبی که اینجا هستش اینه که با این دوربین شما میتونید از یک صحنه خیلی معمولی فیلم برداری بکنین بعد یک فریم از اون فیلم رو بگیرین یک تکه از اون رو برش بزنین زوم بکنین بیارین جلو و بعد میبینیم که کیفیتش تقریبا اندازه یک دوربین بسیار هرفهی هستش همون تیکه کوچیکی که از ویدیو برهی سدین توی تیکه دیگه ای از این ویدیو میبینیم که برای اینکه کنان بخواد قدرت این حسکر رو به رخ بکشه اومده ویدیوی اون رو در کنار یک ویدیویی که با دوربین فای ویدی مارک فور گرفته شده یعنی الان بهترین دوربینی که مثلا من داره برای فیلم برداری، اومده این دوتارو گذاشته کناره هم و از یک صحنه ورزشی توی یک استادیوم فیلم برداری کرده یکی از اونا با هسکر 120MXS یعنی همین هسکر جدیده و اون یکی با دوربین فایو دی مارک فور وقتی این حال داریم نگاه میکنیم تصویر رو میادش یک جایی از تصویر رو تا فریم رو نگه میداره و زوم میکنه روی یک تکه از تصویر روی تماشاچی و بعد ما میبینیم که مثلا توی ویدیویی که با این هسکر جدید گرفته شده حتی آرم روی لباس تماسا چیارم شما میتونیم ببینین البته خب طبیعتا قرار نیستش که این هسکر به این زودی ها توی دوربینای معمولی قرار بگیره اما خیلی خوشحالم از اینکه که میبینم چنین تجهیزاتی. فارق از مسائل سیاسی و اینها داره چی محصولات تجاری قرار میگیره یعنی اینکه هر کسی میتونه بره اونو بخره تو هر کجای دنیا و بره باش فیلم برداری بکنه و ازش استفاده بکنه البته این رو هم بگم نکته مهمی که تو این حسکر وجود داره حجم بالای فایل هایی هستش که اون میتونه ثبت بکنه توی توضیحاتش داشتم میخوندم که یک فایل خامی که توسط این دوربین می گرفته میشه ام حجمی برابر 210 مگابایت داره یعنی اگر که شما بخواین روی 1 گیگابایت حافظه عکس بگیرین فقط چهار تا دونه فایل خام رو میتونین ثبت بکنین و فایل پنجم احتمالا روی اون ثبت نمیشه این چیزی هستش که باید در مورد حافظه ای که میخوام برای همچین دوربین استفاده بکنیم بعد در نظر داشته باشین به هر حال بسیار جدیدی هستش و من خیلی خوشحالم که میتونم در مورد برای شما توضیح بدم من امیر یاری هستم و امیدوارم که شما بتونید این مطالب رو روی کانال یا وبسایت دیجی میج دنبال بکنید و در اون با هم صحبت کنیم. ممنون می‌شم.